سلام باز هم حول مهوره خودها که سالم میخواییم صحبت کنیم و متخصص همیشه که این حوزه برای کانال ما هم آقای قهرمانی هستش سلام آقای قهرمانی سلام خوشحالم که در خدمتون هستم خواهش میکنم شما لطف دارین که به ما این فضا رو میدین و حال از تحقیقات روزانه و فجوهش هایی که مداومتا متن پیگیرش هستید ما رو بهره می و من شخصاً و از طرف دوستان و مخاطبان هم از شما تشکر میکنم خ... متشکرم و امیدوارم که این پادکست هم به شنوندگان عزیز کمک کنه در اینکه بهتر و راحتتر بتونن تصمیم بگیرن و به طور همه جانبه موضوع رو ببینن و از تعصب هم دوری کنن بسیار عالی ما با تایتل که شما حاضر کردین پیش میریم و شنونده صحبت های شما هستید بله متشکرم ببینید یکی از موضوعاتی که در بین گیاخاران خیلی رایج هست همین بحث تعصب و عدم تعصب هست و خب این یه موضوعیه که خب انسان ها خیلی باهاش درگیرن در طول زندگی به دلیل که ممکنه شیوه تربیتی یا تأثیرات محیطی باعث بشه که یک انسان خیلی متأثب بار بیاد و حالا ممکنه در همه ای زمین ها هم تعصب نداشته باشه ولی به ذخرت در یک زمینه خاصی یک تعصب شدیدی براش ایجاد بشه گاهی هم تغییرات ناگهانی در انسان میتونه باعث بشه که اون شخص خیلی نسبت به اون ای که بهش رسیده تعصب بورزه و باعث بشه که یک مقداری در رفتارش با دیگران حالا چه به صورت خداگاه چه ناخداگاه هزادهای ایجاد بشه و خب من خودم شخصا در مورد تجربه شخصی خودم اگه بخوام بگم با این که من سعی میکردم هرگز تعصب نداشته باشم نسبت به هیچ موضوعی اما در مورد گی آخاری شخصا این رو حس کردم بخوص اون اول که تغییر داده بودم سبک زندگی ما که حس کردم یک جورایی دارم متأثبانه به نگاه میکنم هرچند که باز سعی میکردم در رفتارم با دیگران و بخصوص در رفتارم با غیلگی آخاران پذیر باشم و خیلی متاسبانه برخورد نکنم با قضیه اما ناخودآگاه این حس رو داشتم که خب من یه چیز خیلی خوبی رو بهش رسیدم من یه سبک زندگی خیلی عالی که به حال هم برای خودم نتیجه بخش بوده هم برای کسان دیگه ای که تجربه کردند کردن و هم پاسخی به خیلی از مشکلات و درد بشریت و اینکه دیگران انقدر این موضوع رو نادیده می گرفتن هم باعث تعجب من میشد و هم این که یه حس منفی داشتن نسبت بهشون یعنی یه احساس منفی و احساس اینکه دیگران حالا قدر نشناس هستن یا چه فرصت بزرگی رو دارن از دست میدن که در این مورد تحقیق نمی و نمی خوان در خودشون تغییر ایجاد کنن خب این در سالهای اول گیاخاری یعنی تا دو سال اولی که من گیاخار شده بودم همراه با من موند یعنی به مورد زمان یکم کم, کم رنگ تر شد ولی حسی نبود یعنی هر کاری کردم هر چقدر سعی کردم باز هم یک زمینه ای از تعصب در من باقی موند و خب شاید یه مقداریشم به این دلیل باشه که خب اون اوایل که من گیاخار رو شروع کردم خیلی ها گارد می گرفتن و این در واقع یه جورایی واکنش دفاعی من محسوب میشد که تسلیل نشم و راه هم ادامه بدم اما بعدها دیدم که خب نظرات من در یه سری زمینه ها تغییر کرد یعنی چون از اولش من معتقد بودم که در حال یادگیری هستم و از اول با این روی کرد اومدم که من میخوام اطلاعات بیشتر کسب کنم در مورد این سبک زندگی خودم امتحانش کنم تجربه کنم و به صورت درگیری یادگیری پیش برم یعنی بموقعش زمان بیشتر یاد بگیرم و بیشتر بتونم در این زمینه به دیگران اگه میتونم یاد بدم بعد از سه سال که من متوجه شدم یه سری جهو خودم اشتباه داشتم چه در مورد کودن بحث علمی تقضیه چه در مورد رفتار اجتماعی خودم با دیگران و چه در مورد قضاوت هایی که در مورد دیگران داشتم و از طرفی هم دیدم که سایر فعالان گیاهخواری هم کم و بیش چنین تجربه‌ای داشتن و حتی بعضن که تنروتر از من بودن به مشکلاتی با خودشون و دیگران برخوردن که عملا یعنی این سبک زندگیی که قرار بود اصل و بناش بر سلط با کل جهان باشه یواشواش داره تضادهایی در زندگی ما ایجاد میکنه و در تعامل ما با دیگران که داره یه جروعی به میره و اینجا بود که من شروع کردم به تحقیق بیشتر در مورد حالا جنبه های انسانشناسی و رفتارشناسی و روانشناسی قضیه که خب ماها همونطور که تغذیه رو اصلاح کردیم قطعا نیازمند این هستیم که رفتارمون و افکارمون هم اصلاح بشه و متوجه شدم که یه بخش زیادی از مشکل برمیگرده به ازتراب ها و منطق کهنه و استدلال‌های حالا نه چندان قوی که بعضی از گیاهخوران داشتن و اون رو ادامه دادن به طور مثال افرادی که مشکلات وسواسی داشتن و وسواس رو حالا در گذشته داشتن حالا قبل از گیاهخوریشون احتمالاً همون نگاه وسواس گونه دوباره اینجا بروز پیدا می‌کنه و این باعث میشه که مثلا دیگه اگر یک نفر یک بار حالا گوشت خورد یا مثلا اگر یک جوامو مخالفتی کرد در این سبک زندگی ما یه حس منفی بهش پیدا کنیم و احساس کنیم مثلا اون شخص دیگه کاملا آلوده شده و اصلا درد نمی کنه ما رو و اصلا نمیتونه که فرد مفیدی یا مهربونی باشه برای خودش و جامعه یا اینکه استرابی که بعضا از مرگ داشتیم یا حالا از کشتار حیوانات این باعث شده که یک این ترس و وحشت در ما بمونه و این رشد کنه به دلیل اینکه خب ما در فضایی قرار می که دوست داریم که این تغییر رو به دیگران هم اشاعه بدیم و خب همیشه هر روز داریم تکرار میکنیم استدلادهای خودمون رو برای دیگران و این باعث میشه که ناخودآگاه اون جنبه های منفی قضیه هم یه جورایی تر بشه اگه حواسمون نباشه مثلا ببینید یه از آخران این استدلاد رو داشتن که با کشتار حیوانات و با کشتار این حیوانات پرورشگاهی دیگه مثلا چند دهه دیگه هیچ حیوانی باقی موند. خب این نوع استدلال که در اون ویدئویی هم که من برای شما فرستادم بهش اشاره شده بود از نظر روانشناسی این نوع استدلال کلا از اساس ایراد داره به دلیل اینکه خب انسان ها با این که این همه در طول تاریخ حیوانات رو کشتن حیوانات پرورشی رو به خصوص و حیوانات اهلی رو ولی با این حال جمعیتشون روز روز بیشتر شده همونطور که جنگ ها و کشتار ها که میلیون ها نفر انسان ها رو در طول تاریخ کشته باعث نشده که جمعیت انسان ها کمتر بشه بنابراین موضوع کمیت جمعیتی حیوانات یا حالا مجدات زنده نیست موضوع اصل کیفی هست و اینکه ما به عنوان انسان و به عنوان کسی که میخواد آگاهانه زندگی کنه چه مسئولیتی و چه نقشی در این وسط داریم یا بعضن در بعضی کتابهای گیاخوری که به فارسی هم ترجمه شده نویسنده اون کتاب‌ها که خوب از یه نویسنده انتظار میره تعصب کمتری داشته باشه و چون میخواد دیگران رو راهنمایی کنه به دیگران یک راه جدید نشون بده و واقعی افراد مختلف با شرایط روانی مختلف رو درک کنه اما بعضا میبینیم باز استدال پیدا میشه در همین کتاب های که با هیچ منطقی سازگار نیستن. واقعا من بعید میدونم هیچ انسان آگاهی بتونه همچین روندی رو بپذیره مثلا در یکی از این کتاب نوشته بود که ما انسان ها که مثلا داریم میبینیم گوشت خاری چقدر خشونت توشه ما این وظیفه رو داریم که حیوانات گوشتخار رو هم حتی گیاخار کنیم چون گوشتخاری ذاتش مثلا ظالمان است و حتی من در چند تا ویبلاغ خارجی گیاخاران خوندم که به فرق مثلا یه گربه میخواسته بره یک موش رو شکار کنه بخوره بعد این طرف چون گیاخار بوده رفته جلوی گربه رو گرفته موش رو فراری داده یعنی در یک امر طبیعی و غریزی اون حیوانات عملاً اختلال ایجاد کرده و بدون اینکه به عواقبش توجه کنن که به حال این سیستم تکاملی و این سیستم زنجیری که بین موجودات زنده و حیوانات حاکمه هر نوت اختلالی در این بخوایم ایجاد کنیم یا هر نوع تغییری چه عواقبی داره ظن اینکه از نظر منطقی هم ما بخوایم قضیه رو بررسی کنیم خب اولا ما به عنوان انسان وظیفه داریم که رفتار خودمون رو اصلاح کنیم و خودمون رو کنترل کنیم. ما چنین وظیفی نداریم که بخوام رفتار همه حیوانات رو تغییر بدیم و ثانیاً اینکه به طور غریزی و ذاتی ما از کشتار فراری هستیم. به دلیل اینکه ما با دیدن خون یا مثلا با دیدن جون دادن حیوان حس خوبی بهمون دست نمیده در عادت عادی و اگر حس خوبی به یک نفر بخواد دست بده با کشت شدن یک حیوان اون شخص به احتمال زیاد از نظر روانی یک مشکلی داره یا اینکه از بچگی به طور نادرست به این سب عادت داده شده وگرنه به طور طبیعی و غریز ما از کشتار خوشمون نمیاد در صورت که حیوانات گوشت خار برعکس ما هستن یعنی اونها اصلا خیلی دوست دارن و به طور غریزی میرن دنبال کشتار و دنبال شکار رو و اصلا بویاییشون چشاییشون همه چیزشون اون رو میطلبه. بنابراین مثالی که زدم که واقعا در یکی از کتاب های حقوق اییوانات بود واقعا یک مغلطه هست یعنی اصلا استدال نیست و اصلا هیچ کمکی هم نمیکنه و اگر واقعا یک روزی ما بخوایم تمام حیوانات گوشخواار رو گیاهخوار کنیم به احتمال زیاد به زودی شاهد یک فاجه خیلی بزرگی خواهیم بود که به جز پشیمونی هیچ نتیجه دیگه ای واسه ما نداره یا مثلایم که در یکی از کتاب ها نوشته بود اگر گیاهخوار نباشیم و حیوانت رو بکشیم زندگی هر شکلی که باشه هر جوری که باشه فقط یه اطلااف وقت و انرژیه که خب این نگاه من به طور ناخداگاه باش موافق بودم در آن اوایل دلیل اینکه خب معتقد بودم بیاخاری یه فرصت خیلی بزرگه همونطور که برای خود من بود و حالا اگه کسی این فرصت رو از دست بده یا این فرصت براش به وجود نیاد خب خیلی ضرر کرده حت من اما بعدها که به حال نگاه هم متعادلتر شد و تونستم قضیه رو از جنبهای مختلف دیگه هم ببینم به نظرم زندگی هیچ کدوم از ما کمال مطلق نبوده و نیست و هیچ کدوم از ما کمال مطلق نیستیم بنابراین حالا این که یک نفر این فرصت رو نداشته در زندگیش که با گیاه آشنا بشه به خصوص در گذشته که ارتباطات جمعی و وسایل ارتباطی کمتر بود و مثلا خود من تا 18 هیچ اطلاعی از این سبک زندگی نداشتم و اصلا هیچ درک و تصور خاصی از این که گیاهخرید چطور خواهد بود برام به وجود نیومده بود فقط سرفا حالا یه سری احساسات غریزی داشتم کلدا از بچگی زیاد علاقه به گوش نداشتم یا از کشتار حیوانات خیلی ناراحت می شدم اما اطلاعات کافی نداشتم که بخوام تغییری در خودم ایجاد کنم و اون رو ادامه بدم بنابراین حالا من بیام احساس گناه کنم بابت اینکه با این فرصت داشتن نشدم یا بیام احساس گناه کنم به خاطر اعمال گذاشتم یا اینکه احساس بدی داشته باشم که، چرا زودتر با این قضیه آشنا نشودم یا احساس بدی داشته باشم از اینکه چرا بقیه مردم با این موضوع آشنا نیستن خب این فقط انرژی منفی در ما ایجاد می‌کنه و کمکی نمی کنه زمانی ما میتونیم در جهت مثبت گام برداریم و پیش بریم که هر اون کاری که از دستمون برمیاد و اونچه میتونیم رو انجام بدیم بنابراین اینکه حالا یک جنبه از زندگی که خوراک و نوع خوراک هست و نو رفتار ما با زندگی در نهایت اینها یک سری از جنبه های زندگی هستند و همه زندگی خیلی گسترده تر از اینه حالا من بیام به خاطر یک جنبه بگم کذن این یکی رو چون در اون موفق نبودیم کذن کل زندگی رو ببریم زیر سوال و انکار کنیم به نظر من که درست نیست و حداقلش اینه که به ما کمکی نمیکنه این نوع نگاه بنابراین اینها مصادیق هستن که از نظر اساسی و پایه‌ای و از نظر فلسفه ما برای گیاهخوری بایستی اول اینها رو با خودمون روشن کنیم و به نتیجه منطقی و قابل اتکا برسیم و بعد حالا میمونه های رفتاری ما که خب خوشبختانه الان از نظر تعامل اجتماعی و از نظر ارتباطات اجتماعی با غیر گیاهخاران اوضاع خیلی تر از گذشته شده حتی 9 تا سال پیش که من گیاهخواری رو شروع کردم با اینکه 5 سال گذشته و 5 سال زمان زیاد نیست اما تغییرات مثبت خیلی زیادی رو شاهد بودیم در این مدت و به هر حال می‌بینیم که الان فضای جامعه کلاً بازتر شده برای اینکه عقاید جدید و عقاید متفاوت رو بپذیرند یا اینکه حداقل تمسخر نکنند و هرچقدرم مخالف باشن به هر حال احترام بذارند به نظر اون طرف مقابل و این کار رو برای یکی آخر خیلی راحت‌تر کرده دیگه و حالا میمونه بحث این که من که حالا سبک زندگیم رو تغییر دادم آیا با اونهایی که سبک زندگیشون تغییر ندادن تا چه حدی میتونم ارتباط خوب و سازنده داشته باشم و تا چه حدی میتونم رابطه دوستانه‌ای رو با اونها تجربه کنم خب مثلا در شرایط مختلف هم یه تفاوتهایی داره مثلا یه گیاخار اگه بخواد ازدواج بکنه خب مطمئنن باید یه شخصی باشه که خودش گیاخار باشه و حداقل هیچ گونه مخالفتی با این سبک زندگی نداشته باشه اما مثلا برای کار کردن برای حالا مثلا یه امور تفریحی حالا مخافرت رفتن تفریحات و سایر ارتباطات دوستانهی که با دیگران داریم لزومی وجود نداره که طرف سبک زندگیش حتما مثل ما باشه. حالا شاید در شروع تغییر رفتارمون یه مقداری لازم باشه یه مدتی اصلا حتی به خلوت و تنهایی بریم. مثلا برای کسانی که میخوان بدنشون رو از سومون پاک سازی کنن و حالا میخوان یه مدتی خامگی آخری کامل رو انجام بدن که یه مقداری توی مهمونی ها و توی یه سری جمع ها ممکنه مشکل باشه این کار خب اونها یه مدتی شاید خلوت گذیدن براشون خیلی بهتر باشه و اینکه حتی اگه مشغول کار هم هستن مرخصی بگیرن که پاکسازی بدنشون و والا پاکسازی جنبه های روانی براشون راحتتر و موثرتر بشه اما به هر حال ما موجودات اجتماعی هستیم و اصلا هم نیاز داریم به اینکه در کنار دیگران و با دیگران زندگی کنیم و همین که به طور کلی به رشت ما کمک میکنن و حتی یه سری از گیاخواران این رو مطرح کرده بودن که بهتر گیاهخواران شهرهاشون اصلا جدا بشه یعنی یه شهری باشه همه گیاخوار باشن که خب تجربه فعلا نشون داده که خیلی از گیاخوارها با هم دیگه زیاد سازگار نیستن این در تمام دنیا خیلی از گیاخارا دشمنی های زیادی با هم دیگه داشتن که فرق چندانی با بقیه جامعه نداشت از نظر خوش‌نند هر چند حالا گیاخارا در کل شاید یه مقداری تر باشن یه مقداری مصالحت آمیزتر با هم دیگه برخورد کنن در ظاهر اما مسئله اینه که اگر قرار باشه گیاخاران یک جامعه جدا واشن از دیگران باز این خودش یک محدودیته و این فضا رو می‌کنه برای هر نوع تغییری و از اون ور فضا مساعدتر خواهد شد برای تعصب ورزیدن و تکبؤ و رشد کردن چون خب ما وقتی افرادی که ما رو تایید میکنن با اونها بخوایم بیشتر رابطه داشته باشیم بالاخره رشد یا متوقف میشه یا کنتر پیش میره چون وقتی همه ما رو تایید کنن یا مثلا افرادی که ما رو تایید میکنن که دیگه تقریبا فضای زیادی باقی نمیمونه که چیز جدیدی بخوایم یاد بگیریم افرادی که ما رو به چالش بکشن باعث میشن که ما رشد کنیم و این یه موضوعیه که باید سیحتمند بهش توجه داشت و اینا هم بدونیم اینکه حالا ما از نظر سبک زندگی با یه دهم ده فکر و هم نظر باشیم لزوما دلیل نمیش که از بقیه جنبه ها هم با هم دیگه سازگاری خوبی داشته باشیم چه بسا من با یه گوشتخار در بعضی زمینه ها خیلی احساس بهتر و احساس نزدیکی بیشتری داشته باشم تا یک خامگیاهخواری که حالا نظرات من رو هم تایید میکنه ولی ممکن یهی رفتار ها با هم دیگه زیاد سازگار نباشه و خب در اینطور مواقع هر چند حالا من با یاد بگیرم که انطاف پذیر باشن در همه روابطم تا حد ممکن اما جنبه های مثبت رو نباید نیده بگیرم به خاطر حالا جنبه هایی که من فکر میکنم منفیه و در کل آدم باید این ها رو با خودش سبک کنه من یادم پارسال در یک کتابی که این در واقع رفته بودم مسافرت خونه یکی از دوستان بودم یه کتابی بود که من فقط چند صفحهش رو خوندم در رابطه با روابط عمومی بود که نوشته یه خبرنگار آمریکایی بود متاسفانه عنوان کتاب و اسم نویسندش الان یادم نیست اما یه جملهش خیلی کلیدی بود و منو خیلی به فکر فرو برد نوشته بود بدون دیگران ما نه تنها نمیتونیم زندگی کنیم بلکه حتی قادر نیستیم بمیریم بدون دیگران چرا بذلید وقتی هم مثلا ما فوت میکنیم باز جسد ما رو حالا دیگران هستن که حالا یا خاکش میکنن یا آتشش می‌زنن حالا طبق های مختلف در هر کشوری و مثلا برای اون مراسم می‌گیرن و اگه مثلا حالا ارس میراثی مونده اونها ادامهش میدن در موردش تصمیم می‌گیرن یعنی این نشون میده که در نهایت هیچ راه گریزی نیست از اجتماعی شدن و ارتباط با دیگران و این بیشتر از این که جنبه اجباری داشته باشه خیلی بیش از این جنبه معنوی داره و جنبه رشد فردی برای ما و ما اگه بتونیم ارتباط خوبی رو با دیگران تجربه کنیم خودمون مشتاقانه دوست داریم که اون رو ادامه بدیم و در اون هیته رشد کنیم و مسئله دیگه هم که هست احساس گناه بیش از حد و اندازه هست که بعضی گیاهخواران به اون دامن میزنن مثلا من یادمه در سایت تالار گفتگو گیاهخاران ایران سایت وگان فروم اون وقته که خودم گیاهخار شده بودم حالا در بحث ها شرکت میکردیم و بحث رو دنبال می کردم که یه خانومی که تازه گیاهخار شده بود و به شدت حالت ابسورده داشت یعنی در نوشته هاش حالت غم و اندوه دیده می شدد بخ... بیشتر هم به خاطر کشته شدن حیوانات و به خاطر رفتارهای زالانه انسان ها، ایشون مثلا نوشته بود که ما گیاهخواارها هم حتی اگه بخوایم کامل اخلاقی باشیم باعثسیحت و گیاه هم نخوریم. و بایستی هیچ نوع موسیقی گوش ندیم که در ساز اونها از مواد حیوانی استفاده شده و یه همچین دیگاهی که اصلا اصلا آدم وحشت میکنه یعنی واقعا میگه که آیا هدف ما از تغییر سبک زندگی اینه که احساس گناه و وحشت رو در خودمون بیشتر کنیم یا اینکه بخوایم خودمون رو از همه لذت ها محروم کنیم اصلا من خودم تعجب کردم که یعنی چی این جمله که میگه اگه ما میخواستیم کاملا اخلاق مدار باشیم حتی گیاه هم نباید میخوردیم خب این اصلا منی که حالا به انتخاب خودم که نیست که به خوردن نیاز مندم. این بدن فیزیکی ما و این دستگاه گوارش ما و حالا نیاز بدن ما به انرژی این رو می که ما اون رو از غذا ترمین کنیم و احساس گناه کردن در اینجا اصلا مثل این من به خاطر یه جرمی که مرتکب نشدم بخوام احساس گناه بکنم این اصلا من نمی دوم متاسفانه عده زیادی درگیری این فکرن و خیلی ها که حالا ادعای نورخاری میکنن و بعدا در میاد که فریبکاری بوده و دروغ گفتن و اینها اونا هم همینجور ها مطرح میکنن اینها همون امور شهودی رو که نسبی هم هست میان به عنوان های مطلق به کار میبرن و اصلا ترکیب ناجور اصلا در میاد ازش که در نهایت هم کمکی نمیکنه. و فقط آدم رو سردرگم تر می‌کنه فکر میکنم که اینها چیزهایی که هر انسانی کزن باسی اگه در خودش دقیق متوجهش باشه و در صدد رفع اونها تلاش کنه و این رو هم بدونه که چه بسا چیزهایی رو بتونه از مخالفانش یاد بگیره که از هیچ راه ای نتونه اونها رو بهش برسه درسته بسیار عالی مثل همیشه خیلی کامل بود من چندین نکته یادداشت کرده بودم که صحبت کنم اما به واسطه این که شما خیلی کامل به موضوع پرداختین و همه جنبا رو پوشش دادین و این که وقت پادکستمون هم پر شده. من به اونها نمیپردازم دیگه حرف دکراری نمیذارم فقط به چند تا نکته خیلی اجمالی اشاره میکنم اونم این که ما همونطوری که شما هم گفتین نیاز نداریم که خودمون رو برای یک موضوعی حتی به خودمون یا به دیگران بخوایم ثابت کنیم یا قرار نیستش که من اگر سبک خوراکم رو اومادم تغییر دادم و تصمیم گرفتم که گیاخاری کنم مثلا با برادرم یا خواهرم یا دوستی که خیلی سمیمی هم هستیم یا تا قبل از گیاخاری خیلی سمیمی بودیم الان اتفاق خاصی نیفتاده من میتونم خیلی صمیمی باشم خیلی ارتباط خوبی داشته باشم ادامه بدم و دوست من که آدم گوشت خالی هستش یک انسان خبیص یا یک انسان پلید یا هر چیزی نیست این شون هم مثل منه فقط این که ما داریم همونطور که جسممون تکامل پیدا میکنه عقل و خردمون هم متکامل میشه و تکامل پیدا میکنه و در حال حاضر ما نیاز داریم که به سمت گیاه میل کنیم به واسطه شرایطی که بقیقت فیلحال مواجه هستیم باش که چندین بار در مورد اون شرایط صحبت کردیم و همه میدونن و این که ما مثل همون جمله‌ای که توی اون کتاب خوندین واقعا نیاز داریم به ارتباط با آدم مثلا من الان بهترین دانشگاه دنیا درس میخونم و قراره که مثلا یک فضاپیما بسازم اگر آدمی نباشه اصلا چرا من باید درس بخونم اصلا اگر بخواد ارتباطی نباشه چرا من باید فضاپیما درست کنم ما تمام زندگیمون رو که نگاه میکنیم طرز عمیقی گره خوردست با انسانهای اطرافمون و اصلا امکان نداره ما بخوایم خودمون رو در واقع جدا کنیم یونیزه کنیم خودمون رو و بخوایم بگیم که ما حالا جدایی هستیم یا تافته جدا بفتهی هستیم یا اینها همش ساید افکت. شیفت پارادایمی هستش که داره اتفاق میفته و این هست تمام شیفت پارادایم ها ساید افکت داره و من احساس بکنم که این مدل مواجهه ای افراد با حالا شاخصه در مورد شاخصه خاری یا حالا هر شاخصه دیگه ای که توش تغییری به وجود اومده گرفته از همین ساید افکت است و ما باید بپذیریم که هر تغییری این عوارض جانبی رو داره و آروم آروم اگر همدیگر رو کمک کنیم، دست همدیگر رو بگیریم، فکر میکنم که این سوه برداشت ها هم برطرف میشه. باز هم خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. امیدوارم که گفتگوهامون برای مخاطب هامون مسیر خوبی رو هموار کنه تا اینکه بتونن بهتر به نتایجی که خودشون دلشون میخواد برسن و خودشون با اختیار خودشون با منطق و خرد خودشون انتخاب کنن که چطور زندگی کنن و چطور تغذیه کنن و در این مسیر زندگی خودشون رو پویاتر و توسع پیش ببرن خیلی ممنون از شما جاوی ره و خدا نگهدار متشکرم از شما خدا نگهدار